سلام من فتانا هستم و شما به قسمت چهارم از فصل اول قصه هایی برای خواب های بنفش راژیو هجده بنفش گوش می کنید چهارم پاسخ وجود دارد هرچند که شاید نه برای پرسش هایی درست با جیغ ملوری از خواب پرید از رخت خواب بیرون جست و در راه رو با سرعت دوید از کنار سیمون گذشت و به اتاق خواهرش رفت رشته های بلند موهای ملوری دسته دسته به میله های بالای تخت گره زده شده بودند صورت ملوری قرمز بود اما بدتر از همه کبودی های عجیب روی بازوهایش بودند. مادرشان روی تشک نشسته بود و با انگشتهایش هایش گره ها را باز میکرد جارت پرسید چی شده؟ ملوری با نالا و گریه گفت اونا رو ببر، موامو ببرین میخوام از این خونه برم، میخوام از این رختخواب بیام بیرون. من از اینجا متنفرم مادرشان پرسید کی این کار کرده؟ و با خشم به جارت زد جارد گفت من نمیتونم و به سیمون که سردر گم کنار در ایستاده بود نگاه کرد باید کار موجودی باشد که توی دیوار زندگی میکرد چشمهای مادرشان گشاد و بزرگ و خیلی ترسناک شد گفت جارد گریس دیشب دیدم که با خواهر دوام میکردی جارد گفت مامان من این کارو نکردم قسم میخورم از اینکه میدید مادرشان فکر می کند او مرتکب چنین کار زشتی شده شکه شده بود او و ملوری همیشه با هم دعوا و جروبس میکردند اما دعواییشان جدی نبود ملوری فریاد زد مامان مامان ای چیو بیار؟ خانم بیار خانوم گریس گفت هر دو بیرون جارد بعدا با تو حرف میزنم و بعد رو به دخترش کرد جارد با قلبی که به شدت میتپید از اتاق بیرون رفت وقتی به موهای گره خورده ملوری فکر، به خود لرزید. وارد اتاقشان شدند. سیمون پرسید: تو فکر میکنی اون چیز توی دیوار این کارو کرده؟ مگنا، جارد با ناراحتی به برادرش نگاه کرد و پرسید: تو چطور؟ سیمون با سر پاسخ مثبت داد. جارد گفت: من همش به شعری که پیدا کردم فکر می میکنم این تنها سرنخیه که داریم سیمون گفت یه شعر احمقانه چطور میتونه به ما کمک کنه جارد جارد آهی کشید و گفت نمیدونم تو از ما تری. تو باید پاسخ پیدا کنی. چرا برای ما چنین اتفاقی نیفتاد یا برای مامان جارد به این موضوع فکر نکرده بود او دوباره گفت نمیدونم سیمون مدتی طولانی به او نگاه کرد جارد پرسی خوب به چی فکر میکنی؟ سیمون در حالی که از در بیرون میرفت گفت نمیدونم چه فکری بکنم سعی میکنم برم و چند تا جیر بگیرم جارد به رفتن برادرش نگاه کرد و فکر کرد که خودش چه کار میتواند بکند آیا میتواند به تنهایی چیزی را حل کند؟ در حالی که لباس میپوشید به شرف فکر کرد بالا بالا باز هم بالاتر این راحت ترین بود. اما معنیش چه بود؟ بالای خانه، بالای روی پشت بام، بالای یک درخت. شاید این شعر ساده بود که یکی از اقوام پیر یا مرده آنجا گذاشته بود. چیزی که هیچ کمکی نمیتوانست به او بکند اما از آنجایی که سیمون به حیواناتش غذا میداد و ملوری هم در حال آزاد شدن از تخت خوابش بود او کار بهتری نداشت که انجام دهد مگر فکر کرد به اینکه چقدر باید بالا و بالا و باز هم بالاتر برود خب باشه ماجارد فکر کرد بد نیست که بالا برود طبقه دوم را رد کند و سری به زیر شیروانی بزنند رنگ پله های از بین رفته بود و چند بار تخته های پله ها زیر پایش چنان سر و صدا و جیر, جیر کردن که ترسید پله ها زیر وزنش بشکند طبقه زیر شیروانی اتاقی وسیع با سخفی شیبدار بود گوشهای روی کف اتاق سوراخی بزرگ وجود داشت. از میان سوراخ به داخل یکی از اتاق های غیر استفاده نگاه کرد. کیسه‌های کهنه لباس از سیمی آویزان بودند که در پهنای زیر شیروانی کشیده شده بودند. خانه های کوچک پرندگان از تیرک ها آویزان بودند و یک مجسمه ی. نمایش لباس به تنهایی گوشه ای از اتاق ایستاده بود و کلاهی روی سرش داشت در مرکز اتاق هم راه پله چرخشی به سمت بالا کشیده بود بالا و بالا و باس هم بالا تر. جارد با عجله دو پله یکی بالا رفت اتاقی که وارده شد کوچک و روشن بود تنجره هایی در هر طرف وجود داشتند و وقتی به بیرون نگاه کرد سنگ های کهنه و شکسته سقف را زیر پایش دید خودروی مادرش را در خیابان ماسه ی خانه دید و حتی کلبه یا انبار کالسکو زمین چمن درازی را دید که تا داخل جنگل کشیده شده بود این باید همان بخش از خانه باشد که آن نرده های آهنی عجیب را رویش گذاشته بودند چه جای بزرگ و جالبی؟ حتی ملوری هم وقتی او را اینجا بیاورد تعجب خواهد کرد. شاید این کار ناراحتیش را به خاطر موهایش کمتر کند. چیز زیادی توی این اتاق نبود. یک صندوق کهنه و قدیمی، یک چارپایی کوچک، یک, یک گرام و توبهایی از پارچه های رنگ رو رفته. جارد نشست و کاغذ مچاله شده شر شد را عجیبش درابد و دوباره آن را خواند. در پیکره مردی خواهی یافت اسرار مرا برای انسان ها. این دو مصرا او را نگران میکرد دلش نمیخواست جسدی کهنه و قدیمی را پیدا کند حتی اگر چیز جالبی تویش باشد نور زرد خورشید که به کف اتاق میتابید خیالش را راحت میکرد توی فیلم ها خیلی کم اتفاقهای بعد در روز روشن روی میدادند با این حال او دودل بود که صندوق را باز کند یا نه شاید بهتر بود میرفت و سیمون را با خودش به آنجا می آود. اما اگر صندوق خالی باشد چه؟ یا اگر به زخم و موهای گره خورده ملوری ربطی نداشته باشد چه؟ نمیدانست چه کار باید بکنه. زانو زد و تارهای انکبوت و گرد و خاک روی صندوق را کنار زد تصماهای سنگین فلزی زنگ زده بر بدنه چرمی پوسیده کشیده شده بودن دست کم می توانست نگاهی به آن بیاندازد شاید اگر می فهمید چه چیزی توی آن است سرنخ آشکارتر می شد جارد نفس عمیقی کشید و در صندوق را باز کرد صندوق پر بود از لباسهای کهنه و پوسیده و بیتخورده. خورده زیر آن ساعتی جیبی با زنجیری دراز کلاهی کهنه و کیفی چرمی و قدیمی پر از مدادهای عجیب و تکه های زغال نقاشی بود چیزی در داخل صندوق نبود که برای انسان ها یا کس دیگری شبیه راز باشد. چیزی هم شبیه جسد مرده نبود. در پیکره مردی خواهی یافت اسرار مرا برای انسان ها بار دیگر به محتوای صندوق نگاه کرد. و چیزی به ذهنش آمد. او به یک محفظه نگاه می کرد. پیکره یک مرد هم محفظه یا قفسه سینه ی اوست. جارد با ناامیدی آهی کشید چطور میتوانست حق با او باشد و هیچ سند و مدرکی نداشته باشد هیچ چیز به دردخوری توی صندوق نبود و بقیه مصرعهای هم مفهومی نداشتند اگر راست و دروغ یکی باشد زود باشد که دریابی شهرت مرا چطور میتوانست به کمک چیز واقعی به این مطلب پاسخ دهد این بیشتر شبیه بازی با کلمات بود اما چه چی چیزی میتوانست دروغ باشد چیزی درباره این ورد چیزی درباره محتویات این محفظه یا خود صندوق او به صندوق‌ها کرد و صندوق ها او را به یاد دزدان دریایی انداختند که گنجی را در ساحل زیر ماسه‌های سرد پنهان می‌کردند. دفن در زیر، نه یک چیز دروغین، بلکه صندوقی با کف دروغین. با دقت نگاه کرد و دید که کف داخل صندوق بالاتر از چیزی است که باید باشد. آیا واقعا معما را حل کرده بود؟ جارد روی زانوهایش نشست و شروع کرد به فشار دادن تمام کف صندوق و انگشت‌هایش را رو روی کف خاکالود صندوق حرکت داد و به دنبال درز و شکافی گشت تا بلكه بتواند کف را بالا بکشد و ای را زیر آن آشکار کند. وقتی چیزی پیدا نکرد، بدنه بیرونی جعبه را لمس کرد سرانجام زمانی که سنگشتش را روی لبه سمت چپ فشار میداد، داد محفظه بیرون پرید و باز شد جارد که به شدت هیجان زده شده بود دستش را داخل محفظه برد تنها چیزی که آن تو دید بخچه مکعبی شکل بود پیچیده در پارچه کسیف آن را بیرون آورد. نخ دورش را باز کرد و کتاب قدیمی و کهنه را دید که بوی کاغذ سوخته میداد. اسم کتاب که با فشار داخل چرم قهوهی ای شده بود میگفت راهنمای آرتور اسپایدررویک به دنیای شگفتانگیز اطراف شما لبه های جلد، ناصاف و در بعضی جاها کمی پاره بودند وقتی کتاب را باز کرد متوجه شد که پر از نقاشی های آبرنگ است مطالب کتاب با جوهر نوشته شده و در اثر گذشته زمان و رطوبت لک و پیس شده بودند با سرعت کتاب را ورق زد و به یاد داخل کتاب نگاه کرد این دست نوشته ها شبیه دستخط شعر روی کاغذ بود اما عجیب ترین چیز موضوع خود کتاب بود این کتاب پر از اطلاعاتی درباره جن و پدیها بود شما به قسمت چهارم از فصل اول قصه های برای خواب بنفش رادیو بنفش گوش دادید شما میتونید ما رو در کانال تلگراممون با آدرس رادیو 18 بنفش با 18 عددی دنبال کنید. مهربون باشید و شاد و مهربون.